تو اتاق بی پنجره من امروز شب مهمونه امروز چشم لامسس امروز حتی لب زندونه آسمونه صاف و دوست داره این مرد بارونی بیا بزنیم به بیراهه ما که یه عمر سر برا بودیم لازم نیست قصه ها رو بگردیم لازم نیست استراب و بفهمیم لازم نیست ذهن بادو بخونیم لازم نیست پل که بازو ببندیم این درب دریچه ی دنیاست والطقم من بیرون شه بیا تو که بریم بیرون از هر چی آبادی ظاهر و باطن ویرون شه لازم نیست قصه ها رو بگردی امضار پنداری کنی با ملک خاشون امروز دیگه لازم نیست البسوزونی واسه اون پاپتی ها وترک پاشون بیا تو که وارد بشی به ابتدایی که اتفاق هم میشه بیا تو با اینکه میدونم انتهای این شب انتهای من میشه همین نورکم سوی بقه چشما دست تا بکوبم به شیشه با مستی پروانه کی سوی که میش آبشار سی دور coffee تا ایمان بیارم به افسانه بیاد تو که بری بیرون از دنیایی که تو رو از من دور میکنه بیرون از این اتاق چیزی هست که ما رو به جدا شدن مجبور میکنه چو موج موجا مو ہوں۔ تو صخره سینه‌ی من بعد طوفان و ضربه‌های محکم بعد برخورد‌های طولانی آروم می‌گیرن کنار همدیگه من برام کردن این طبیعت بهشت مغرور بودم و مغرور می‌مونم به لطف عشق است و دور می‌مونم چی کارش میشه کرد عشق دیگه کفشای رفتنت رو میپوشی خطای دفترم رو میبوسم خیز دفترم رو کنار میذارم نوشتن اون همه معجزه کار من نیست من هر چیزی که میدیدم و رو خط آوردم تو این اتاق بی پنجره که چشمه لامسه بود من دیدنی ها رو نشمردم لمس کردم و توی جادو غلط می‌خوردم اگه ساعت رو برمیگاشتم دوباره همون اشتباهو تکرار می‌کردم تا اگه می‌دونستم چی میشه ترس از آخر این راهو انکار می‌کردم دست به دست تو راه می‌رفتم مسیر جایی که یادم آخرین بار معنی داشت زنده بودن جایی که من با تو به تکامل رسیدم قبل از مرگ اتاق بی پنجره‌ی من تو اتاق بی پنجره‌ی من امروز شب مهمونه امروز چشم لامس است امروز حتی لب زندهونه